بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد الموسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما دي رثيقات بباشد تجاشتين جملة بحث انك أبضل قصنا طهر بنجد بحث قول حنفی ها و بر حسب قول جنگور که آب سه قسمت کل آب, آب ها سه قسمت طاهر و سهور و نجس خب ما این بحث رو خاتمش ندادیم ما تذریف دادیم گفتیم که آب حقیقتش دو قسمه یا طاهره که طاهر و سهور با هم فرقی نداره و یا این آب نجس حالا بیام بررسی بکنیم ببینیم اونهایی که گفتن آب دو قسمته چه های ها دلیل هایی برای خودشون دارن؟ ما انهاییی گفتن چه قسمت چه دلیل هایی برای خودشون دارن؟ بیم بررزید کنید دلیل اول انهایی که گفتن از دو قسمت گفتن خودمان چنین در قرآن بیان میکنند که وَإِن كُنتُم مَرْضَ او عَلَى سَفَرٍ او جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِظ او لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ ت أي شش سري مادة فلم تجد ما فتيمموا. كلمة يا آب يما در انجا نكرهت. نكر نكره هم در انجا در سياق النفي يمده فلم تجدوا آبيرن نياضيد. إن آب مطلق. إن آب شرك عام در محل مثل أصله إن النكره در سياق النفي عام. او تعوم نکره در زیاغ نفر عموم داره یعنی تمامی آبها را شامل میشه دلاله چه مطلق باشه چه مقید چه مستعمل چه غیر مستعمل فقط یک آب ازش خارج میشه ما در شهر آب نقمه سهور نداریم تاهر نداریم آب هرچی آب هست همون آب ساهر یا سهوری است که با آن تهارت تهارت جایزه نو دو دومی که ما داریم اسمش رو گذشتیم نجس این نجس اجموع روش اجمعا و احادیث هم در این با, با سریفه که از جمله حدیث بعدی که خاطرم داده ولا غل الكلب في اناء حد فليقتل ثم ما بعده انه بالتراب که اینجاست انتقال پیدا میکنه به آب و اون آب نجس میشه وإستفادئن آب حراما فهم شيء السلات بإن حديثة سدلالكرنا حديثة بئر وضعج فرموديه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء الماء لا ينجسه شيء يقسم دارين آب آب طهر آب يقنوا آبه این آب چیز نجه پسی نمیکنه، آب اگر زیاد باشه و همچین اغسلال کردم به روایت ابن عباس در نزد بخاری که شخصی که در عرفه بود از روی شترش افتاد رسول الله فرمودن اغسلوه به ما و سدره اغسلوه به ما و سدر که با آب و سدر برده های کناری که هست اون شخص را بشورند. الان این آب برگهای های صدر بهش اضافه شده و لازمه افزودن یک ماده خارجی اینه که چی اون آب عبر بشه خب الان این میت رسول الله هم دست دارن با این آبی که با کمی برگهای های کنار یا سدر آمیخته شده اون میت را بشورن غسل میت هست یا نیست؟ آیا غسل میت باشه زنده فرق داره؟ فرق داره آیا این آب از تهوریتش خارج شد؟ خارج نشد پس همون آبی که هست با این اضافی که به شده از حالت از, از این خارج نشده صاهرم نشده بلکه آب رو تهوریتش باقی و برای چه میت و چه زنده من جمع دادن غوز و رفح حدا جایزه. خب این ادلله به طول عموم اونهایی که گفتن آب فقط دو قسمته اما اونهایی که گفتن آب قسمت قسمته استدنال به حدیث ابو حريره که سؤال میشه حدیثی که در مصد احمد از آب دری رسولا سؤال میشن سرسولا که ترخوا در ربایتی الحلال و وجه استدلال گفتند جمهور چنین میگن که صحابه میدونن که آب دریا نجس نیست پس وقتی که میان سوال میکنن از رسول الله که تاهر یا تهوره میشه باش تهارت جز میشه باش رفع حدث کرد لازمه اینه که در نزد صحابه آب سفر مده پس صحابه آب طاهر دارن و طهور دارن جواب ما پاسخ ما اولا این حادثه برای یک صحابی پیش اومده یک صحابی پیش اومده یک صحابی چنین از کار بیش که این آب آب دریاد نمت داره آیا از طبیعتش خارج شده نشده روی اصل آبیتش هست روی اصل فهوریتش هست یا نیست با ماده پاکی آمیخته شده این اشخال بسید پیش اومده آیا بردیگر اتحاب پیش اومده خیر. روایتی حتی از این عمر که کراحت داشته که بوزو بگیره با آب دریا خب دو این مطلب این که شما اتضلال میکنید به فهم صحابی میگید این صحابی چنین اشکالی بهش پیش اومده که آیا این آب طاهر یا سهوره این چنین شما اتضلال کردید رسول الله صلی الله علیه و سلم چی جواب دادن؟ رسول الله جواب دادن که چی؟ آبی که با نمک آمیده شده این همون آب دریا چیه؟ هو الطهور و ما او. اون آبی که با چیز طاهر مخلوط شده مطلقاً چیه؟ تاهره. حالا با کمی زنگ باشه، زنگالود بشه، نمک باشه، قند باشه، هر باشه. مادامی که از طبیعت آبیتش خارج نشده، با دودو نمیدونم با شربت و با فلان آمیخته نشده، روی اصل تهریتش باقی روی اصل آبیش باقی میشه از آن برای رفع حدث استفاده کرد. پس ما اینجا باید قولی که بگیریم رسول الله و فهم صحابی قول رسول اللهی که چی پاسخه به اون اشکال اون صحابی پس ما استدلال میکنیم به پرمودی رسول الله و به حکمش که آب دریا طاهره و تهور هم پاک و هم پاک میکنه تا یک سوالی مطرح می آب تهور هست ظاهره آب پاک آب دریا یا آب چه تو یا آب یک برکه تو دارید یک شخصی اومد این آبو دوستید آیا جایز با این آب وضو بگیره آیا اگر بوضو گرفت وضو داره اون شخص نداره سوال؟ همیشه در این مسئله آب اگه دوزیده شده میشه باش وضو گرفت نیست خب وضوش درسته گناه هم داره همه متفقن آب ببین جمهور چی میگن جمهور میگن گناه کاره و حدثش و همچنین خبرش هر دو تا میشه هم حدث هم بزوی داره و هم اگر خودشو پاک بکنه از اون نجاست هر دو تا رک میشه. در نظر حنابله روایتی در نظر حنابل خبر اون ناپاکی و اون نجاست ادرار پاک میشه. لیکن، تهارت و حدت ازش برداشته نمیشه و تهارت بهش درست نیست. مذهب ابن حض و با باید از حنابل چیلیم داریم؟ نه درسته که حدثش رفت بکنه و نه هر دو تا درستی و صحیح هم قول اوله قول جمهور قول شافعی ها و مالکی ها و همچین حنفی ها چون من و تحریم بردوزی واقع شده نه در سهارت. و نه وقتی اون منه عن اون چیزی که ادش نه شده را فاصل میکنه که به ذات خود اون عبادت بر بگرده اما این مثله اصولیه یعنی الان ما نه شدیم از زرزی کردن نه از انجام دادن یک ساعت و یک عبادت مستقل دیگری این نهی که شده باعث میشه که چی؟ با ارتفاع به ما ما گناهکار بشیم در اون دوزیدنمون. نه در اون روزی گرفتنمون. بسیقه مزن به جمهور شخص گناهکاره و با اون هم میتونه حدثش رفت بکنه هم همخبرش. خب بیم حدیث بعدی. حدیثششم. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي غريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وللمسلم أوله النبي التراب ولله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في في الإناء فاغسله سبعا وعثروه الثامنه شب التراب مسائلی که در این حدیث نفته شده، مسائلی که در این حدیث داریم خیلی زیاده. اول بیان عباراتش رو تطقیق بکنیم. اذا شرب شرب نوشیدن اذا شرب الكلب في اناء حد يكون غير از ظرفی از شما نوشید پس انذر را هفت بار بشویید و در روایت این از مسلم اولهن بتراب به با تراب به اولین بارش با خاک و در حدیث دیگری داریم اگر سگی در ظرفی از شما نوشید هفت بار آنها بشوید و بار هشتم با خاک آن را پاک بکنید خود پود کلمه ی بلغم یا بولو در لغت عربی همسا که در لغت دهی مسلم اومده به آشامیدن درندگان گفته میشه سبا یا درندگان حالا این درندگان چه از حیوانات بالدار باشن یا بی بال؟ چه از درندگان باشن و چه از امثال شیر و پلنگ و بب. اولم بپردازیم به مسائل حدیثیش مسائل حدیثی چنین اینه که امر بریختن اون آب اولا در روایتی از طریق علیب نمی سر چنین اومده به لبز فل یورک خوب دستوره به ریختن اون آب. اون آب ریخته بشه بعد شسته بشه و با خاک پاک بشه لیکن طبق اون چیزی که ابن مندر و امام نسایی و ابن عبدالبر گفتن این لفظ را فقط علی بن مسر روایت کرده و مطابعتم نشده در نتیجه این زیادی از علی بن مصر شازه امام ابن ملقین این شدود را رد میکنه این شدود را رد میکنه یکی نه میشه جنبه و هیچ مخالفتی درش نیست. چون لازمه ایش اینه که اون آب ریخته بشه از اون زفت ریخته بشه لیکن به شدود نزدیکتره چرا؟ چون اگر ما نگاه بکنیم مجموعه جل روانت بدون اضافه این لفظ رکمی بدون پلیورک بدون این لفظ و اون چیزی که لنس میشه این راوی قاطی کرده بین حدیثی با این حدیث چون بحث شستن بار و با خاک شستن در حدیث اومده و بحث ریختن در حدیث دیگری این تا حدیث را با هم قاطی کرده و در اینجا آورده در نتیجه این لفظ در این حدیث شارده نه این لفظ مطلقا درست نیست تو نه، در این حدیث در روایت ابو هرره اضافه هست. خب مثل دوم حدیثی که در این حدیث هست. شستنه بقا در روایت داریم اولاهن در روایت داریم نه در روایت داریم نه و در روایتی که ما دومیش گندیم و عفرو و ثامنه به تراب هشتمین بارش بخواب حالا صحیح کنیم ما میش میشیم وسطیش میش میشیم اولیش میش میشیم آخریش میشیم فقط نمی کنه بس ولی صحیح اینه که فرق نمی کنه جمبور از از ابو هریره بالادر اولاد النبی تراب رضات کردهند و دو بومن عقلم همینو میگه. اگر قرار باشه هفتمین بار با خاک یا هشتمین بار همطور که در حجر دوله مغفر داریم و عفرو به سامنه به طراب. بسید کلمه عفرو یعنی دلکو یعنی اونو با خاک پاک کنید. عفرو از تاکیر و از دلک دادن و پاک کردن با خاکه. هشتمی بار غیر ممکنی که با خاک باشه که در بار هشتوم مثلا ما بیام یک زبطی که هم بار با خاک شستیم هشتمی هشتومی بار بیام خاک حالی میکنیم چه فائده داره پس لازمه شستن با خاک اینه که چی در اولین بار باشه همطور که در لفظ حدیث اغوهره در رواست جمهور داریم او هون نه قبل از اینکه که به مسائل این حدیث و در این حدیث ردیس بر معتدله، ردیس بر اشاعره، ردیس بر کسانی که احادیث نبوی را به حجت اینکه که رد میکنند، به حجت این که عقل مقدم بر نفس رد میکنند، ردیس بر عقلانیها سبحان الله. 1400 سال می گذرد. این احادیث را فقها و علمای اهل سنت رو سر و چشم گذاشتند، قال رسول الله را روی چشم و سر گذاشتن. معتدره می اومدن ایراد می گرفتن. اینها را ببین خاکی که از سگ کثیف سری را با مسلمان را باق میکنند. اهل سنت بین چقدر سگ میاد در زرفی می نوشه یا دستی به سگی میگیرند دست خودشون با خاک خاکالود میکنن. عقل اومدن اون عقل قاصرشون بر این شرع خدایی مقدم دونستن. 1400 سال گذشت الان که حق باید هر چند که حق قبرن شناقش شده بود الان حق روشن تر میشه چشم حسودا و چشم این عقلانی ها خور میشه الان باید یک پزش بیاد بگه که رسول الله درست گفته سبحان الله حدیث ما یک شخص فاجر و یک شخص کافر بیاد تعیین بکنه. من بر خودم اسم اسلام بذارم بگم من مسلمونم لیکن حدیث رسولا چون با اقلم نمی را رد بکنم این یکی از زلائل این حدیثی که از زلائل را یکی از معجزات رسول الله بر صدقش و بر این که خداون همونطور که قرآن را حفظ کرده سنت را هم حفظ کرده چون اگر سنت حفظ نشد قرآن هم نمی نمیشه. خداوند در قرآن چنین میگه: انزل الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن باید تبیین بشه. نماز باید بدونیم چطور بکنیم روزه را رو باید بدونیم چطور بگیریم. پس لازمه تبیین اینه که سنت حفظ بشه چون تنها وسیله برای, برای برای تنها وسیله ای که هست برای ایمان برای فهم قرآن سنت رسول الله و خب پزشکان چی میگن؟ میگه چی کشف کردن؟ خیلی جالبه پزشکان چنین میگن. وقتی که سگ ادرار میکنه یا مطوعش انجام میده فضا ی رو انجام میده کرمه از شکمش خارج میشه با لی خودش سعی که میاد مقصد خودش رو با زبانش پاک میکنه اون زبانم به بدنش میکشه سبب میشه که اون کرمه ها به زبانش انتقال پیدا بکنه. و با نوشیدن آب اون ها به آب انتقال پیدا میکنه و با آشامیدن این آب سبب میشه که این کرم به انسان منتقل بشه خب پزشکان چی میگن میگن که این کرم آبم چارش نمیکنه آبم نمی زورش نمیکنه نمیتونه این کرم را از بین ببره و بکشه تنها راه حل کشتن این میکروبات طاونه بیکاز شامپو خیر تنها راه حلش خاکه خاک فقط میتونه این کرم رو بکشه خاک فقط میتونه این کرم رو بکشه یکی از موجودات نبوت بر صدق و قول صادق و رسول الله صلی الله علیه و سلم که دستور دادن که اگر سگی در زربی نوشید آبی نوشید اون زرب رو افت بار اولین اف بارش با خاک این از کمال قابلی و از حد و انسان اینی که از محاجدات از اون احادیث بزرگی که عدالت اهل سنت و ایمان و تقوی اونها رو می که چطور؟ با احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برخورد کردن و بهش عمل کردن خب این حدیث با این لفظش فلیق سلح و دلیل بر وجوب شستن زر با تعداد حقبار رو داره همچنین دلالت بر نجاست سک رو داره حالا الان اختلاف که این آبی که اون سک درش نوشیده و اون ظرف شستنش و دیختن اون آم نجاستش تعبودی یا تعلیلی امام مالک میگه امر تعبودی صرف عبادت که جمهور و صحیح هم همینه که این امر و شستن اون با هفت بار آغ امریس معلن و از جهتی هم تعبدی چون از وحی اومده از جهتی تعبدیه و از جهتی که اون اعتبار عدد در هست تعلیله. اونم گفتیم بحث میکروف ها و کشتن میکروف ها ولی که آیا چیزی دیگری جای آب را جای خاک را میگیری یا نه و صحیح اینه که چی؟ چیزی دیگری جای خاک را نمیگیره حالا از جمعه اختلافاتی کلما دارم که هست چند بار باید شسته بشه آیا میشه بر سه بار شستن اکتفاق کرد یا باید هفت بار شسته بشه جمهور چنین میگن که باید سبقی این حدیث هفت بار شسته بشه لیکن ابو حنیفه بر اینی که با سبار شستنم جایزه و استدلال کرده به اثر موقوف ابو حرره بالم حالا که اجتهاد خود صحابی هست و در سندش هم اشکال هست لیکن حالا مذهب روی همین اثر اساس شده و بیان شده بنیان شده که با سبار شستنم جایزه خب را صحیح هم قولتون هوری که باید هفت بار شسته بشه ما بیانم تذ ننی قبل از اینکه مسائل فرقی را تفکیق بکنیم. باز بکنیم. یک مسئله کوچیک را بگیم. با اونم این که اصل در چیزهایی که ما در روی زمین داریم پاک یا نجس پاک. اصل در عبادات. اصل در عبادات تحریمه. اصل در مسبولات و در چیزهایی که روی زمین حله برعکس همه اونجا حل و اینجا تحریم عبادات تحریم دلیل چیر که اصل اولا اجماع دوم من دلیل فرموده خداوند دل و علا در سوره بقره آیه 29 هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا گفت خلق لكم برای شما آفرید برای ما آفریده اصل لازمه آفریدنش برای ما اینه که ما جایز از اون استفاده بکنیم مگر چیزهایی که تحریمش و نجاستش در خود قرآن و سنت بیان شده ما در این حدیث اینچنین برداشت میکنیم که سک نجست حالا ما قبل از اینکه به نجاست سک بفردادیم بیام تعریف نجاست رو بکنیم تعریف نجاست نیچی نجاست خودش یا چی چی؟ نجاست چیزی کثیف از لحاظ شرم چیزی که شرم اون کثیف شده نوسته آب بینی کثیف یا کثیف نیست آب بینی کثیفه لیکه نجده ننجسی تااهرود درار سگ ن چرا نن به خاطر بخاطر به خاطر بخاطر چیزی که چیز؟ چیزی چیزی کتیفیش، به خاطرشر شر اونو کتتیف مستقر دونسته ناپاک دونسته چیزی که شر اونو ناپاک بدونه یا کتیف بدونه اون چیز نندن نجاست الان در نظر حنفی ها نجاست دو نوگه یکی غلیز و دوم خفیف نجاست غلیز مثل خون حیز مثل سک مثل خوک نجاست خفیف مثل ادرار حیواناتی که گشتش حلاله هر چند خود سر مذهب دانشم ابو یوسف و دانشم از دیگر ابو حنیفه هست که این دو قصد غلیزش و خفیفش هر دو بر برمیگذه به نجاست حکمی اما ابو حنیفه در مذهب چین اینه که حالا نور تقسیم دیگر نجاست در نظر حنیفی ها اینه که نجاست یا حقیقی یا حکمی حقیقی. حقیقیش بازم دو نوعه یا مرعی آغیر مرعی یعنی با دیدی میشه یا با دیده نمیشه خون با چش دیده میشه ولی ادرار با دیده نمیشه مثلا جاهای با چش شاید دیده نشه و شاید دیده بشه اینها خون و ادرار رو نمیدونم اینها همه جز نجاست حقیقی هست دیده بشه یا نشه یا مثلا آبی که درش سر میفیده مرئی یا غیر مرئی؟ غیر مرئی اما نجست شکمی نجفت حدد مثل مثل آب مستعمل در نظر حنبی آب چون دو کسمت درسته؟ یا تاهره یا نجس. گفتن آب مستعمل آبی که استعمال کرد در عبادت درستید که در عبادت دیگری استفاده بکنید خب آب خود آبه با چیزم آمیسته نشده از عصرم خارج نشده استفاده هم از اون جایی سید طاهرم قبول ندارده بخورده به جهور چه کار بکنن چی بگن؟ گفتن که چی؟ این آب نجده و صحیحی گفتیم؟ آب نجد نیست اون آبی که استفاده شده نجد. خب تقدیم بعدی نجاسات در نظر ها و هنبلیها شافعیها و هنبلی ها الا با لفظی دیگر ایتب تا ها یک نجاست عینی دارد و دومیش نجاست شکمی نجاست عینی و نجاست شکمی نجاست عینی هیچ کدومش پاک نمیشه مگر خب که به سرکت دردید میشه مگر مشروع که به سرکت دردید میشه مثل خوب، گوشت خوب، گوشت اولاد هیچ بهش پاک نمیشه اما نجاست حکمی است که بیه چیز منتقل شده مثل آبی که در یک زرد است یا یک بچه مثلا رو یه فرشی ادرار کرده این خودش به صفحه تبدیل میشه یا مغلزه هست غلید نه نجاست حکمی یا اینکه غلید سگه همینطور خود که در آبی بیا یا دستی بهش گرفتیم اینا غلیظه هفت باز و با آب شسته بشه با پاک شسته بشه و یا اینکه خفیف مثل ادرار بچه کوچک که با آب پاک میشه. و یا اینکه متوسطه سایر نجاسات مثل خون حی یک بار هم شسته بشه با آب پاک میشه ادرار و مسائل دیگه این الفاظه که تو در نزد جمهور یا نزد شافعی ها خوب حالا سکه نجاستش سکه نجاست دهانش یا نجاست بدنشه آیا نجاستش عینی یا نه؟ خود سکه ذراتش نیست یا نه؟ چی میگی شما؟ پس الله در این اگر سگ در آب میشی خب اگر دخش در اون آب وارد کرد پاشو درش وارد کرد دمشو در اون آب زد اون آب پاک یا نه؟ چی میگی؟ ظاهری هستید فقط میریند؟ بازم نجس، حلت چی بود؟ حلت انتقال اون میکروب ها اون کرم ها وقتی که اون معقدش فاق میکنه اون زبانش به تمامی بدنش هم میکشه. این لحاظ عقلی از لحاظ شرعی هم بازم حالا ما میام میگیم تفسیر قابل را از نظر حنفی ها و مالکی ها و همچین ظاهری ها اصل سکت طاهره دستش میخوایی بگیری بگیری بلندش می نازش میخوای بکنی بوسش میخوایی بکنی چیز استدلال کردن به فرموده الله جل شانہ فكلوا مما امسكن عليكم یک به اصل موضوعمون و اونم اختلاف در خود الساكت. از نظر حنفی ها و مالکی ها و ظاهری ها چی بود که خودت سگ اصلش نجس و سدلال کردن به فرمودی در سوره مائده در آیه چار فکولو ما امسفن علیکم سگ هایی که الان برای سید استفاده میشن برای شکار خداوند دستور میدن که از اون چیزی که برای شما شکار کردن بغورید جائزه که بخورید خب اگر نجس بود دستور میدن که شسته بشه عند از شافعی ها و حنبلی ها و صحیح هم همینه که خود سک نجاستش عینیه دلیل شافعی ها و حنبلی ها روایتی که از ابن عباس هست رضی الله عنهما در نزد امام مسلم ابن عباس چنین میگوید که که همسر رسول الله به من خبر دادن میمونه رسول الله صلی الله علیه و روزی بیدار میشن و میمونه متعجب میشه از حالت رسول الله سوال میکنه یا رسول الله من امروز حالتت رو طبیعی نمیبینم چی شده رسول الله چی میگه ان جبریل کان وعدني ان یلقان الليله جبریل وعده داده بود که امشب به من من بیاد فلم يلقني اما والله ما اخلفني دیگه امروز نیمد بدی دارم و به منم خوش نداده رسول الله صلی الله علیه و سلم اون روز را میمونه میگه ممونه می که اون روزش را همون طور که بود با اون حالت بدش سفری کرد سپس سفر در دلش اومد که طول سگی یه بچه سگی در خونش هست میگه در زیر در یک جایی در خونش اون سگ پیدا کرد که امر بهی پس دستور دادن اون سگ رو بگیرن اون طول سگ اون بچه سگ بیرون بندادن بعد حالا چی بچه شاهد در این حدیث ثم اخذ بيده ماءا فنضح مكانه میگه بعد از اون آبو گرفتن و اونجا پاشیدن و پاک کردن اصل نار پاشیدن ولی کن در خود لغت عربی بنای شستنم میاد خب اگر نجاست در دهن سگ چرا اون که سگ نشسته بود رسول الله شستن و آب روش پاشیدن. پس نجاست نجاست سگ نجاستش عینیه و اما از لاله به آیه در جاش نیست چرا چون سگ وقتی که سید را شکار میکنه پوست اون حیوان را با دهنش میگیره درسته؟ و ما وقتی که اون حیوان را زبتش میکنیم یا اون حیوان را میخوریم گوشش رو میخوریم نفیستش بحث در محلش نیست خب الان این بحث بحث سگ بود چند تا بحث بحث نیستم ضمنان این بحث میاد بحث خوب بحث علاق و قاتل بحث مگر فشه، و حیواناتی که خون ندارند. حالا آره از متر کلی، بالاخره مردارند. یک مرچه ای، یک مگر، یک جایی توک کرده، مورد. آیا هنگش نجت یا نه؟ هرچی که جید، میت نجته درسته، این دیگه که روش اجماع و این چه اختلافی روش خب الان این میتمون این مردارمون پشید حکمشیه نجیس دلیس حدیثی که اگر پشید در آب شما افتاد اینم یک از احادیتی که مقدس انگوش کداشتی لنیم کنید چی خود مسلمان ها کسیف مگت را میدنن تو آب و بعد بیرونش میارن میخورن تا اینکه الان الان مدر 14 میان پزشکان ثابت میکنن که یک بال پشه زهره بال دیگرش خواد زهره وقتی که تو آب میفته با زهر میفته و اون بال که زهره زهرت آب را خونسا میکنه و این آب خود پیزشکانم از اون دارو استخراج میکنن خب این حدید نصده بر اینکه اگر پشه در آب افتاد مرد جایزه که ما در آب فرو آب بگنیم برای جایزه سفاده بعد اون آب نجست نشد بعد چیزهایی که خون ندارند، پس مگر هرچی که هست اگر مردند نجس نمیشن جایزه که قادر بلندش بکنید یا هرچی که هست بلندش بکنید بیرونش نشون دادید هرچند که شاید تذیره تذیره فنش با نفت تنگیم باشه. میمونه خوب آیا خوب هم یا نه خوب و حیوانات درنده و بعد اولاق میاد و بحث گربه هم میاد بحث گربه هم میاد در همین زمن هایی موضوع حالا نمیدونم بحثو همینجا خاتمه بدم یه این که ادمش رو بجنم برای در ساینده چون الان بحث بعد بحث بزوز اگر بحث اینجا خاتمه بدیم خیلی بهتره. بحث خوب دلیل همون بحث شطرنج کسی که با شطرن بازی نزیشی واضی بکنه رسول الله فرمانگجی مثل کسی که با دستش دست در گوشت خوک فرو برده خوکم نجسه به هم به نص آیه و هم به نص حلی مثل سگ فرقی نداره لیکن الا این شستن با خاک و حقبار خاص چیه؟ خاص سگه میمونه اولا و میمونه گربه و درندگان درندگان بازم نجسن حالا طبق مذهب شافعی ها که نجس نیست طبقه مثبه مالکی ها و شافعی ها اما طبقه مثبه حنفی ها و حنبی ها و صحیح ها اینه که نجس هن بدلیل رسول الله سوال میشن از آبی که وما یلوبه من استباع از آبی که ترندگان مثل مثلا روباغ و نویزنن میان از اون می نوشن رسول الله سال میکنه کنن درباره این آب بعد چی میگه رسول خدا الله علیه و الماء لا لا ینجس آب طاهر و نجس نمیشه انجینیر ما میفهمیم از این حدیث که او خود اون حیوانات تقریبا بر برای اینکه چی که اون حیوانات درنده نجسند و لیکن نجاستشون به غلظت سگ نیست نجاستشون به غلظت سگ نیست میمونه بحث اولاغ بحث اولاغ هم بازم همشینین احادیتی که داریم که رسول الله نه می کنند از خوردنه گوشت اولاغ و همشینین قاطر و چیزهای دیگری از حیوانات کلا از همین نسل هستند همین خانواده هستن بحث اولاغ و بحث گربه استثناه هستن هرچند که گربه خودش خود خود در بحث سبا وارد میشه لیکن فرمودی رسول الله من الطوافین علیکم و الطوافات بیان کنند جلو در بحث هندشانا فاید فقط گذری بکنی علت نک طاهر بودن گربه را فقط یه چیز میدونه اونم کثرت مجالستش و کثرت رفت آمدش در خونه ها به خاطر همین اون نجاستش نذز خفیفیه که که اشکالی نداره اگر به طرف نشه ولی کن بر برای اینه که چی از اینی که نجس است، اینی که این تمامی حیوانات درنده، اون حیواناتی گوششون حرامه مثل اولاق، مثل اینا نجسن ولی به خاطر بخاطر به بخاطر استفادهش، بخاطر خاطر اینکه انسان روز زندگی روز مردش با اولاق بوده و خواهد بود به بخاطر همین مثل همون بحث گربه اشکالی نداره و اون نجستش، شرب بخاطر حرجی که در رفت حرجی بشه از امت بخاطر همین جایز دنسته که ازشون استفاده بشه و اون نجاستش اعتبار پیدا نکنه. لیکن حیوانات دیگری از ما دورن میشه فریز کردن در سکت مثل خوب مثل شیر و ببر اینها هرچنکه لو انجاستشون بین خفیف و بین غلیظ هست لیکن اصلا جاست درشون هست و اگر در زرک نشیدن باید شسته بشه غیر از کور به کنیم چالش سبحان الله خان